به به سبزی پلو با ماهی این غذای ایرانی بسیار خوشمزه است این ماهی سفید دریای خزر است تا حالا ماهی سفید خورده ای؟ ماهی سفید؟ نه نخوردم ماهی سفید از ماهی های خوشمزه دریای خزر است میدانی دریای خزر کجاست؟ بله در شمال ایران. درست است. استانهای گیلان، مازندران و گلستان کنار دریای خزر هستند. روسیه هم کنار دریای خزر است. آن طرف دریا. بله. روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان کنار دریای خزر هستند. واقعا این ماهی خوشمزه است چند نوع ماهی در دریای خزر وجود دارد؟ حدود هشتاد نو ماهی در دریای خزر زندگی می کنند خاویار این دریا معروف است؟ بله میدانم که خاویار ایران بهترین و گرانترین خاویار دنیاست